رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در سیاه دانه شفای کلیه بیماری هست فقط تونه اجل حتمی رو درمان کنه چون اجل حتمی برای هر مخلوقی هست پایان امر هست یکیش هم انسانه حتی اگر یک انسانی هم خیلی قلدر باشه قلندر باشه همه کار و این کنتم فی بروجن مشیده یاد رکم الموت مگ به سراغش میاد دیروزد و داره سخت و نداره پس اون نمیشه درمان کرد اما بقیه بیماری ها رو میشه درمان کرد بحثمون مومنا در سیاه دونه بود کسانی که کمر لقی دارن در خواب یا بیداری در هفته چند بار برکتشون میاد اگر هر شب یه قاشق مرب بخوری سیاه دونه با اصل بخورن کمر لقی و سرد مزاجیشون که افته متابولیسم بازاله خوب میشه سیاه دانه نامهای مختلفی دارد در کشور مصر به سیاهدانه دانه برکت گویم دانه برکت بعضی سیاه مغز سیاه مغز گوین در کشور یمن به سیاهدانه میگن قهطه قهطه و قاف و حجینی ت دار قحط در ایران اسلامی بیشتر شونیز میگن گرچه سیاهدانه در ادبیات جدید متدابلتره به زبان لاتینی به سیاهدانه نف لون نف لون و همچنین بیشمه، بیشمه قویان مناطق یونان و اطراف یونان. اگر سیاهدانه را سایده با آب سبزی ترتیزک که میگیم جرجیر، میگیم رشاد، میگیم سبزی شاهی. اگر سیاهدانه را سایده با آب تر تیزک خیست کرده و با یک قاشق سرکه سبک در آمیخته مثلا یک قاشق پلوخوری سرکه ریختی تو استکان روش آب بریز حالا شده نصف استکان محلول آب سرکه اینا را همه رو قاطی کن با دوتای قبلی که گفتیم به همراه یک فنجان روغن زیتونم به این اضافه کن با این دارویی که به دست آمده هنگام شب اگر انسان سرشو چپ کنه و صبح هنگام با آب گرم و صابون یا شامپوی کم اسید به از ریزش موی سر جلوگیری میکنه پس یکی از داروهایی که از ریزش موی سر جلوگیری میکنه این داروی ترکیبیه سایده سیاه سیاهدانه مخلوط با آب ترتیزک که شاهیه که جرجیره که رشاده بعد یک قاشق مومنا تا نصف استکام سرکه سبک یعنی محلول سرکه سیب بعد دوباره اینا رو قاطی میکنیم با یک فنجان روغن زیتون این مخلوط رو شب به سر رو میزنیم صبح با آب گرم نه سرد باشه نه داغ با آب گرم سر خودمون رو با صابون یا شامپوی کم اسید میشویم اگر کسی مثلا بیماری پسوریازی است داره اینجا دیگه لازم نیست با صابون یا شامپوی کم اسید بشوره بلکه باید با کتیرا بشوید باید با کتیرا بشه اگر کسی ریزش مو داشت همین محلول مخلوط رو میزنه و اگزما پوستی داشت اینجا جوش های شرکی متعدد حتی جوش غرور جوانی داشت اینجا باید با صابون گل ختمی بشویه بس اون مخلوطی که به سرش زد بعدن که میخواد بشوره با صابون گل ختمی بشویه اینا حاشیه ماست برای این کتاب قبلا از این قوی گفتیم که مخلوط سیاه ندارد و اون چیه؟ اگر کسی در 24 ساعت ریزش موی سرش بسیار زیاده رو یقاهاش رو متکا رو فرش خونه شونه میکنه دست میکشه همجور دست, دست دسته اصلا موش میاد اینجا جوشانده گل بابونه جوشانده گل بابونه صافش کنه سرد که شد در این آب حنا بخسونه. این رو به سر بزنه به دو ساعت چهار ساعتی باشه بعد بره با آب بشه به قدر این ازولاتی که ماهیچای حلقوی دوره هلطارموی حالت الاستیکش قوی میشه و محکم به مواه میچسبه که با دستم هم میکشه و مواهش گنده نمیشه خیلی این قویه این حالت های ارجانسی. بخواهم جلوی ریزش سری مو رو بگیریم بعد تقویت مو کنیم تصایل فهم بودیم؟ اون وقت میتونه با روغن بادام تلخ از اون قوی روغن سیاه دونه از اون قوی تر روغن کنداش میتونه اون وقت تقویت موی سرش کنه یه بار دیگه مومن ها شوره سر داره توان با زعف ساقی مو حالا اینجا محلول رزماری که همون محلول اکلیل کوهیه 20 دقیقه قبل همه به سرش میزنه. اینجا هم زده شوره هم تقویت ساقه مو میکنه. فقط مورد احتیاطش دو چیزه. زن حامله به سرش نزنه سخت جنین میاره. کسی هم که ضعف اعصاب شدیده به سرش نزنه حالت تهوهش میگیره. چیزایی هم تو ها هست که سبب پرپشتی موی سر میشه مثل مصرف مثل مصرف پودر سبوس گندم یا جو یا پودر شلتوک برنج یا خوردن میوه خرما اینا همه افزایش دهنده موی سر فواید دیگه هم داره اگر کسی درد سر داره سردرد حالا 69 سردرد داریم 14 نوش حالا بعضی از سردردهای خاص سایده سیاهدانه رو با نصف از سایده گیاه قرنفل و به همون مقدار از گیاه یانسون به نسبت مساوی، یعنی از دو گیاه آخری جمعن به اندازه سیاهدونه سیاهدونه یک قسمت دوتای بعدی هر کدوم نصف قسمت تصال فهم بودیم؟ قرنفل یکی هم یانسون هنگام سردد یک قاشق آن را از این مخلوط رو با شیر مخلوط میکنیم و به محل درد سر میمالیم اگر بخوره بهتره از این مخلوط بخوره بعد با روغن سیاه دانه محل درد رو ماساژ بده سردردش تسکین پیدا می‌کنه بدون اینکه قرصای مسکنه سر سردرد بخوره اگر کسی سکسکه دارد یک قاشق سیاه‌دونه رو با یک فنجان شیر گرم که با عسل شیرین شده مخلوط کنه و قبل از خواب میل کنه و مسائل مستحبی قبل از خوابم رعایت شه مثلا قبل از خواب دستشویی بره بعد از دستشی دستش بشوره تا موش مستحب دو تا مستحب وضو بگیره سه تا مستحب آیت الکرسی و سه مرتبه سوره قدر بخواند این چهار تا مستحب ذکر تسبیات حضرت زهره رو قبل از این که تو بسترش دراز بکشه تو بسترش نشسته قبل این که دراز بکشه تسبیات حضرت زهره بگه خیلی فواعد داره تو روایات واید تا گفته یکی از فواعدش اینه هیچ وقت خواب وحشتناک نمی بینه یعنی بحث ذک درمانی یه بار بحث درمان با گل و گیاه گفتیم گل بهار نارنج ضد کابوس شبانه و ضد بیماری هیسترییا یا بیماری وحشت اما یه بار دیگه وحشت ذکر درمانیه همون ذکری که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم به حضرت زهرا سلام الله علیها آموخت تشکیات حضرت زهرا میگفتن تبعیت کامل از رسول الله و فدایی واقعی از امیر المؤمنین علی علیه السلام که اجماع فرق مسلمین بر ولایت حقه امیر المؤمنین علیه علیه السلام است همه نقل کردند که پیانبر اکرم به دستور خداوند امیر المؤمنین علیه السلام را در قدیر خون نصب کرد بر ولایت و منزله امیر المؤمنین نسبت به رسول الله به منزله هارون نسبت به موساس الا انه لا نبی بعدی پس وسی پیغمبر رو اگر انسان همراهی کنه گوش به فرمانش باشه اطاعت و تبعیتش کنه کار دختر رسول خدا رو انجام داده یعنی فاطمی زندگی کرده و با حضرت زهرا در قیامت محشور می شود فاطمی زندگی کردن یعنی تبعیت محض از فرامین رسول الله احیاگر سنت رسول الله بودم. حالا یکیش هم چی بود مومنان؟ تو بحث ذکر درمانی توضیحات استحبابی مسلمانانه که گفتم یکی چم چی بود تسبیحات حضرت زهرا قبل از خواب انسان به بعد بخوابه تو بسترش هیچ وقت خواب وحشتناک نمی نمیبینه اگر کسی گوش درد دارد و بخواد واکس اضافی گوشش رو تمیز کنه اینجا یک قطره از روغن سیاهدانه را در گوش بچکاند گوش را از چرک و آلودگی پاک میکنه. وقتی چکون یکم نگه داره. بعد رو همین بخوابه. پس چرک و آلودگی عبه میره. یک بار دیگه مؤمن عفونت گوش داخلی کرده. توعم با واکس اضافی گوش. اینجا روغن به خالص. فقط سه شب. شب اول سه قطره، شب دوم 5 قطره، شب سوم هفت قطره. نگه هم می‌داره بعد رو همین می‌خوابه تا صبح. هم واکس اضافی گوش درمیاد، هم گوش دردش خوب میشه هم عفونت داخلی گوش برطرف میشه دیگه مریض به نیاز از چه خوشکن‌های شیمیایی آنتی بیوتیک سیفالکسین و آموکسی سیلین و آموکسی دیگه لازم نیست بخوره. که سوی برای کبد و کلیه ها دارد یه بار دیگه مؤمن نه افونت گوش داخلی داره و نه واکس گوش اضافی بلکه گوش درد شدید داره اینجا روغن صداب صداب سزاب... چند تا اس چند تا است داره که تو روایاتشیه هم با دال هم با دال اومده روغن صداب قوی ترین دارو زد گوش درده تصاف که روایاتش پارسال خوندم از تبل معصومی اینا حواشی ما بود بر این قسمت که تذکر داریم اگر کسی قرار یا بیماری سعلبه دارد. یعنی موی سرش تیکه تیکه میریزه به خاطر استرس شدید نه اینکه دچارم بیماری گال یا بیماری جرب یا بیماری گری باشد. نه به خاطر استرس شدید ها تیکه تیکه مثلا یه تیکه ابروش میفته، یه تیکه سیبیش، تیکه ریشش میریزه که پوست سر پوست لب اینا پیدا میشه یا مال سرم همجور با اینکه بیماری های خاصی نداره مثل جرب نداره که بیماری گال به زبان فرانسوییت تخصصی پوستمون مییم یا گری یا بیماری کچلی نداره که مسری و واگیره و زخم میشه. نه از این بیماری نداره به خاطر استرس شدید آیا با سیاهدون میشه درمان کرد قراره رو و صبه رو بله برشه. یک قاشق سیاه دانه را کاملا نرم سایده و یک فنجان کوچک سرکه سبک یعنی یک قاشق پلوخوری سرکه میزی تو استقام روش آب بریز تا نصفه بعد مومنها این یک قاشق سیاه دانه را کاملا نرم سایدیم این مقدارم که از سرکه سبک تهیه کردیم سیر سیر اثام سیر این رو هم له و لردش کردیم آمنان این ستا رو با هم مخلوط میکنیم محلی که ریزش سریع مو بوده به خاطر استرس شدید به اسطله رامانشانسی بالینی یا تخصیصی پوستمو به اسطله عربا بیماری قراعه با قاف و عین قراعه یا سعلبه که گرفتم از این مخلوط به محل ریختگی مو میزنید به صورت زماد نگه بذار همونجا اگر بعد از گذشته یک روز محل رو بشوید و سپس با روغن سیاهدانه خالص یعنی ای که در پایه روغن بادام تلخ جوشیده یا در پایه روغن زیتون جوشیده بعد از اون با روغن سیادونه چپ میکنه. بدین کیفیت تا یک هفته مداوای این مریض حاصل میشه. چون گاهی به خاطر استرس شدید که اینجور میشن باز دوباره استرس مضاعف مریض میگه. که چرا من قیافر ایطاری شد یا موم ایطاری شد. این سیکل معیوب تکرار میشه. ریزش بدتر میشه. چون اینا حالتهای خویشون رو بل میکنن. یعنی مایچای حلقبی اطراف هر طور مو خویشون بل میکن. و مو بسیار ساقه ضعیف و ساس میشه. ریزش میره بالاتر. درستون مومن یه بار کسی خارش شدید بدن داره. یعنی بیماری حکه داره. قبلا ها گفتیم میتونی از سرکه سیب استفاده کن. هم خوردن و هم به صورت پماد و زماد به محلی که خارش شدید داره چند فایده داره یکیش هم ضد خارش پوست و زد اگزماست دوم گفتیم که روغن بنفشه خالص ضد خارش و زد اگزماست سوم گفتیم روغن کشنه که عربا میگن قاست با و سین و ت دسته روغن قست اونم از اینا قوی تره اینم ضد حکه خارش پوس و اگزما حالا امروز تو مباعثم تو بحث سیاهدانه میگیم روزی سه مرتبه محل خارش را با روغن سیاهدانه چرب کنید پس از مدت زمان اندکی چند روز نمیشه محل خارشی از می میرود کسانی که خانوم حامله داره خانومشه دخترشه عروسشه برای اینکه زایمان این خانوم سخت نشود میتونه خوراکی ببره مثل چی؟ مثل یک لیوان شربت زعفران عسل، مثل یک لیوان شیر با زرده تخم مرغ که پخته شده به صورت پودر بیس دقیقه جوشیده هم به صورت پودر اونم قاطی شیره با یه قاشق پلو خوری اصل دو لیوان همراه خود شوهر اینه ببره که با همسرش میره توی بیمارستان حالا تین اتاق انتظار لیوان اولیه بده همسرش بخوره که شربت زعفران عسل اصل بوده دیگه قدم بزن سریحا سری 14 دردش میگیره بعد اون لیوان دیگه کشیر با زرده تخم مرغ که 20 دقیقه جوشیده بودا پودر شده بود قبلا جدا جوشوندی تخم مرغها 20 دقیقه تو آنفلانزای پرندگان نگیره لذا زرده پودره, پودره. یه قاشو اصلا هم که تو شمزدی حالا که دم این آسانسور میخوان با این تخت ببرنش تو اتاق زایما اینجا بهش بده این لیوان دومیه بخوره چرا؟ تا, رو... تا زور زن زیاد شود و زایمانش طبیعی باشه اگر کمزور باشه و فاصله لگنی دوازه سانتیمت باز نشان ناموس یک معتبه دو تا 28 بخیه یا کورتاج یا سزارین میشه برای اینکه زور این خانم زیاد بشه اوستتون گفتم اینم پایه آسانسوری که میخواد بره تو بخش زایمان بهش بده بخوره قبرق حالا مباحثه خودمون تو بحث سیاهدانه از مهمترین چیزهایی که ولادت انسان را آسان می کند جوشانده سیاهدانه را که با اصل شیرین شده و با جوشانده گل بابونه مخلوط شده باشد فایده زیادی دارد هم در درمان خراشیدگی داخل محبل و واژن زنان و هم در ولادت آسان این ماده تصالب فهم این به مقدار یه قاشق پلوخوری زیادش همه که میره اونجا لباسش عوض کنه بعد این لباسهای گشاد بپوشه به توتاق زایما همونجا میتونه این بستهای کچیک دربسته که هست اندازه یه قاشق پلوخوری موامنا از این جوشنده سیاه دونه ای که مخلوط بوده با جوشنده بابونا میتونه بخوره همجره که لباس چه عوض میکنه که میره اتاق زایمان تصالب فهم بوده این تمش اگر قبل از زایمان یا بعد از زایمان زخم داخل یا جراحت یا بریدگی داخل واجن و مهبل دارد اینجا میتونه روغن سیاه رو داخل محبل به چند قطرهی به چکانه. حتی تو بحث خوراکی هم میتونه با مایات مفید مثل آب. مثل آب جوش بلم میتونه چند قطره روغن سیاه دانه باش بخوره. اشکال نداره. چه تو بحث خوراکی؟ چه تو بحث درمان موضعی خراشیدگی واژن یا؟ محبه درمان موزی که بهترین نوع درمان دیگه لازم نیست پیش طبیب مرد لازم نیست عمو. آدم با حیا باشه خوبه اگر کسی مؤمنا دندوناش درد میکنه و یا هنجرش درد میکنه و یا لوزاش درد گرفته و یا متورمه حالا اینا چند دستور داره از شکلات کاکاو نسکافه قهوه و چای مونده و چای با اوسانس اجتناب کنه از خوردن میوه نارنگی اجتناب کنه میتونه گل میخک دارویی یعنی قرنفل همه رو آغشته کنه به اسانس قرنفول یا به روغن قرنفول یا این پنج تا از همین گلا رو همین طرفی که دندونش درد میکنه به جوه دندان و و ریشه و فکش بی حس حالا بعد میتونه مراجعه کنه فردا اینا به یک متخصص جراح لثه یا متخصص جراح دندان یه متخصص ارتودنسی حالا درمان ریشه ای کنه یا درمان دندان کنه میتونه درمان ریشه ای کنه یا معالجه تام انجام بده یک بار دیگه بخوایم روش لسه شو قطع کنیم تورم لسه شو قطع کنیم و درد ناشی از عفونت های سطحی لسه رو از بین ببریم و تورم لوزه جانبی و تورم لوزه سوم از بین بره با محلول سرکه، آب سرکه تو دهن بگردونه، قرغره کنه، بریزه بیرون در 24 ساعت یکی دو بار بهترین شب قبل از خوابه اینا هم چی میشه مومنان؟ برطرف میشه تو مباعث خودم در دهان گرفتم و قرغره جوشانده سیاهدانه جوشانده سیاهدانه رو تو دهانت نگه داری و سپس قرقره کنی تو دهان بگردونی برای تمامی بیماری های دهان و حنجره فوق العاده مفید است همراه این عمل یک قاشق سایده سیاهدونه رو ناشتا همراه آب گرم میل کنی تأثیر فراوان دارد و نیز با روغن سیاهدانه هنجره رو از خارج چرب کردن و ماساژ دادن لسته رو با روغن سیاهدانه بسیار مطلوبه کسانی که بیماری های قدد ریز داخلی دارن از کیست قدرت یا ناکارآمدی آمدی یا کاهش و نرسانی بودن ترشعات هرمونی قدر میتونن از سیاه استفاده کنن ولی این رو با اصل طبیعی کندویی که دارای موم طبیعی هست استفاده کنن اینها رو همزمان بجوان خوب با آب دهن مخلوط بشه بعد قرد بدن دوز مصرفش تا یک ماه روزی یک بار به زودی شخصی که دوچار ناراحتی ها و بیماری قدرت قدد دنون ریز بدن هست قدرت دنون ریزش میشه منظم میشه نه پرکاری پیدا میکنه نه کمکاری از جمله بحث قده تیروئید که دو طرف سیب آدمه این تیزی روی گردم سی سیب آدم عدد هفت بذار زیرش این جایگاه چیه؟ قده تیراییده پشت این جایگاه قده پاراتیرایید حالا کمکاری یا پرکاری تیرایید عوارضی داره بیماریایی هست از گواتر ساده و گواتر سنی و بیماری قمباد یا بیماری گواتر حالا اینجا شما تا بذار پرکار باشه نه کار تنظیم قدیم مثلا تیرایی اینجا سیاه دونه با اصل بخور یا گفتم اگر شب قبل خواب بخوری کمرتم سوس باشه کمر لقم باشی اوسه اونم خوبه رسول مؤمنان اینم قدرت خدا اگر کسایی جوان یا نوجوان هم و جوش های جوانی دارن جوش های قرور جوانی قبلنا تو بحث سرکه و اکنه اونجا گفتیم که محلول آب سرکه گفتیم تو یک لیوان دو قاشق چای خوری سرکه یه سیب می رزی. بعد آب می رزی. هم می با این محل زخم و جوش های حرور جوانی و آکنه رو شستشون میتین. حالا تو مباحثه ما تو بحث سیاه‌دانه، سیاهدانه تازه رو سایده با روغن کنجد مخلوط میکنیم. دهن سمسم با روغن کنجد مخلوط میکنیم. و یک قاشق آرد گندم سبوسدار با اینم مخلوط میکنیم. و از داروی آماده شده شب هنگام دانه ها رو چرب کرده و صبح با آب گرم و صابون گل ختمی شستشو میدین به مدت یک هفته اگر خود این روغن سیاه دانه رو با نوشیدنی های مرقوب مثل آب آشامیدنی سالم و آب جوش بخوری. سریع تره هم به صورت پماد زمان هم به صورت خوردنی اینم درمان دانه های مشهور به غرور جوانی پودر سیاه دونه خالص مخلوط با روغن کنجد مخلوط با یک قاشق آرد گندم سبوسدار این سه خوب قاطی هم می‌کنی شبها محله جوشهای غرور جوانی و همچنین زونا رو چیکار می‌کنید مؤمنان؟ شرب می‌کنید. صبح با آب گرم و صابون گل ختمی شستشوی میدیم این که مطلق صابون نوشته ما قبول نداریم. فرمایشش نا تمام. صابون و شامپو پر اسید نباید باشه. نه حالت اگزمایت بیشتر میشه. اگر در این مدت درمان که طول درمانش یک هفته بود هر روزم این آبش با آب جوشه بلرمشو با روغن سیاه دونه خالص بخورن روغن سیاه دونه خالصی که خوراکیه. یعنی پایه جوشش این سیاه دونه تو روغن زیتونه تو روغن بادام شیرینه نه این که تو روغن بادام تلخ باشه که خوردنش سمیه نه این که تو روغن زیتون صنعتی باشه که سمیه و مصارف صنعتی داره گایی به صورت زمار تو بعضی مسائل استفاده میشه نه پایش یا روغن بادام شیرین یا روغن زیتون باشه اینا حواشیمونه برای این کتاب به صورت مطلق میگه اشتباه ها قید بزنین این هم طول درمان کمتر میشه درمان سریعتر میشه به مدت یک هفته اگر کسی بیماری های پوستی متنوع دارد، گوناگون داره. از حکه خارش پوست، از زونا، از جوش غرور جوانی، از جرب و گال، از زونای سرسیا، از جوش های بزرگ کورک. حالا با این دارو میشه همه اینها رو درمان کرد. روغن سیاهدانه خالص با روغن گل سرخ یه بار گل سرخ عادیه که فرانسوی ها میگن گل روز یه بار یه قسم خاصه مثل گل سرخ آتشی که به زبان فرانسوی میشه تیراز تی حالا چه گل محمدی که گل روزه چه تیروز که گل سرخ آتشیه این گل قرمز روشن ماتیکیه تصال فهمید؟ خب، روغن سیاه دونه خالص رو با روغن گل سرخ آتشی به اندازه مساوی اینو باز مخلوط بیکنیم با آرد گندم سبوستا از داروی آماده شده بر محل جراحت که قبلا با پنبه آغشته به سرکه پاک شده یعنی به جای اینکه ادا اطفار قلب و شرق رو در بیاریم و محل زخم ها رو با الکل سفید یا الکل صنعتی یا الکل اتیلیک یا الکل اتانول با این دنگ فنگا به جای اینکه با این چیزا محل زخم یا محل آمپول و مانند او رو بخوایی ضد عفونی کنیم که آثار سوی رو روان و رو گردش خون شخص دارد ما محل رو با سرکه طبیعی تمیز میکنیم و زده می میکنیم چه سرکه انگور عسکری مؤمنا ها؟ الخلو چه سرکه خاص که سرکه سیب باشه ولی سرکه طبیعی سیب پس محل آمپول زدم یا واکسن زدم یا سرم زدم ما محل رو با سرکه سیب زده اوفونی میکنیم بعد آمپول میزنیم یا سرم میزنیم تصایب فهمیدی؟ حالا اگر زغف شده ما محل رو با سرکه شستشون میدیم اگر طاقت شخص کمه این سرکه طبیعی سیب را محلول با آب مقتر محلول با آب مقتر میکنیم و محل رو میدیم خب معنیشون چی گفتن؟ اینجا. پس روغن سیاه دونه رو با روغن گل سرخ و اندازه مسابی با آرد گندم سبوسدار مخلوط نموده و از داروی آماده شده در محل جراحت میزنیم ولی محل جراحت رو قبلا پاکسازی کردیم زد عفونی کردیم با سرکه طبیعی مثلا سرکه سیب و در مقابل نور خورشید نگه میداریم این دست طرف رو که مثلا زخمی بود پای طرف رو این به خاطر فعل و انفعالاتی که از تابش نور خورشید لازم داریم مثلا کسب ویتامین دی برای افزایش مقاومت پوست و مقاومت قسمت داخلی استخوان که قسمت استوانه داخلی استخوان مقاومتش به منگنز و ویتامین دیه اگر شخص در کل روز ربع ساعت در نور مستقیم خورشید باشه ویتامین دی بدنش تامینه. این لازم یک غذای چرب و چلیست بخوره که مثلا کره بخورم، خامه بخورم، سرشیر بخورم که ویتامین دی امروز هم تأمین بشه نه کل روز ربع ساعت در نور مستقیم آفتاب که باشه ویتامین دیش تأمینه این هم مومنا حواشیم پس چیزایی که این آخر فرموده بسیار فرمایش خوبیه. میگه مثل ماهی مثل تخم مرغ، مثل منجو که بعضی کشورها دارن درست میکنن فعلا تا وقتی که این بیماری پوستیش خوب نشده فعلا مصرف نکنه. وقتی که این زماد رو که روغن سیاه دونه خالص شد خالص هم داشت که به بدنش میزنه فعلا این مدت یکی دو هفته از این چیزا نخوره حرفش خوبه چیزهای دیگر موامنا هست حالا باشه بعضی از محققین دیگر این فرمایشات شیعه بزرگوار حاجه و رضا حاتمی یکی دیگر از بزرگوار و محقق از حضرت خانوما قابل عرض همه ملت های شریف شیعه اصناع شریف به همه افراد بشر احترام میگذارد و صلح طلبترین گروه اسلامی شیعه اصناعشریه به اقرار تمام دشمنا اما شیعه اصناعشری پیرو امام حسین علیه السلام هم هست ظالم رو قبول ندارد زیر بار ظلم زندگی نمی کند ظلم پذیر نیست ظلم ستیزه چون بی بخار نیست، بی بطه نیست، بی تفاوت نیست، بی غیرت نیست، بی نیست اهل کسلی و تنبلی و سستی و کاهلی نیست اهل تلاش سازنده با نیت خالص و دارای برنامه صحیح برای حال و آینده خود و دیگران است و این برنامه صحیح را از رسول اسلام و بقیه معصومین آموزش دیده و عمل میکنه اهل عمل صالح با نیت خالص لذا نیت شیعه اثناعشری نیت خیره چون مؤمن و مؤمنه بالفعل و خیررسان به دیگرانه تمام جوامع بشری و مردم دنیا اگر افراد خیر واقعی میخوان که خیررسانه به همه افراد بشری باشند بیان دوست واقعی باشن بیان همراهی کنن باشی ایان اصناع شریم. برای دنیای خودتون هم خوب تره تو روایات شیعه هست نیت المؤمن خیرون من عمله مؤمن و مؤمنه از این بیشتر توان خیر ندارد نه اینکه بناش بر خیر نباشد برعکسش زلمه ی کفار حربیان منافقین بالفعلم مفسدین فلعزم اینا نیتشون شره و همیشه شر به همه اقوام بشری هم. چه در کشورهای خودشون چه در کشورهای دیگر از خاورمیانه و آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی و آفریقا و, و هر جای دیگر این ظالمین عالمان که شر به افراد بشر اگر بشر صلح واقعی میخواد اگر بشر نجات از هرزگی و شرارت میخواد بیاد همچون شیعیان عشری زندگی کند اللهم علی محمد